سخنرانی دکتر محمد اصدی گرمارودی موضوع سخنرانی دعا و اثرات آن با توجه به آیه 186 سوره مبارکه بقره و روایات معصومین علیه مسلام جلسه اول الله الرحمن الرحیم قال الله تعالی فی کتابه عوض بالله من الشیطان الرجیم و ازا سعلك عبادی انی فا غریب و عجیب و دعوتت دا ازا دعانه فل یستجیبولی و یؤمنو بی لعلهم یر شدون 186 از سوره مبارکه بقره. یکی از آیاتی که ارز کردم خیلی بحث داره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 بیشتر مطرح باشه در بعضی ایام کمتر، ما این از اون است که همیشه مطرحه. در حالات خوش یه جور مطرح در حالات ناخوش یه جور مطرحه. در وقت‌های خاصی که خدا برای راز و نیاز بیشتر قرار داده، مثل ماه مبارک رمضان، مثل شب جمعه، مثل عرفه، مثل زمان‌های خاص عبادی یه جور مطرحه. در برخی زمان‌هایی که اگر حالت عادی نشه شب و روز عادی با دیگه جور متصره اون این آیه است حالا دقت کنید و اذا سالك عبادي اني واو عطفه خب چرا واو عطف آورده اینجا چون من این از اول میخوام ترجمه کنم خب و که و میگم اما این نکتهش ال در بحث تفسیری مطرحه و اذا سالك این رفت میده آیه رو به قبل پس مدومی استباتی به قبلم هم داره همونطوری که عرض کردم قبلا که باید روش بحث کنیم قبلش آیات راجبه روزه بود ماه مبارک بود ارزش روزه و غیره بود که سه آیه پشتره هم از کتب علیکم و سیام شروع کرد تا شهر رمزان الذی انزلتیه القرآن که جلسی قبل بحثش بزشت. آیه بعدش هم که انشالله بعد از این آیه بحث خواهیم کرد آیه 187 بازم راجع به ماه مبارک و مسائل در ارتباط با روزه داره این آیه وحدت قرار میگیره که علت ظاهر مساله روزه نیست چیز دیگه است اما چرا وحدت آیات قبلش مسئله روزه است بعدش مسئله روزه است این آیه رو میاره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 بله گفتن که متول تو ادبیات عرب معروف خیلی سخته حوصله نمیکواد نوعا آقایون تلابی که در حوزه ها متول میخوندن سابقه خیلی رسم بود الان کم شده مختصرش کردن به قول یه آقایی میگفت دیگه حوصله ها اونقدر کمه که میگم حوصله ندارن بخورن بجون آبشو بخورن دیگه متاول کی حوصله داره بخونه باید مختصرشو بخونه گفت این طلبه بنده خدا هر متول میخوند خوابش میگیره خدا اولادی بهش دادیم، این بچه شب بیخوابی داشته رو گریه میکرد خانم گفت خسته شدم این بچه نمیخوابه گفت کتاب متول بذار جلوش راحت خواهد خوابید. <laughs> حالا اونایی که در متول اگه خونده باشن این توش عرض و نوع این ستابا این بحثا رو میکنه التفات گوینده داره مطلبی رو به مخاطبش میگه هنوز مطلب تموم نشده ولی بناب جهتی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 یه حرفی رو تموم نکرده یه چیز دیگه میگه دوباره میده یه چیز دیگه میگه بله این غلطه اما در فساحت و بلاغت و حرفی که حساب داره مثل قرآن کریم که هرچه توش دقیق میشن بیشتر شگفت زده میشن التفات باید راز داشته باشه لذا این واب داره نشون میده که این آیه از طرف پروردگار یه توجه بخشیدنه حالا چیه؟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 سوال کنند از تو تو پیغمبر اسلام کاف خطاب و حضرت نبی اکرمه خدا داره با پیغمبرش حرف میزنه و ازا سعال عبادی پس اون هنگامی که سوال کنند از تو عبادی بندگان من که روی این بحث داریم یکی از اون نکته های زریف همینه فرموده عبادی نه فرموده اذا ناس الناس اذا سعلك مثلا فرض کنید المؤمنون اذا سعلك تداوکه اذا سعلك عبادی اولا عبادی که فرموده با یای نسبت بندگان من اینا بندگان من هم اینا عبد من هم خدا یک جور انتساب به خودش رو در این آیه داره مطرح میکنه که دوی لطف و مرحمت و حساسیت نسبت به بندگان در این عبارت نحفظه شده که حالا بحث میکنیم فا اینی غریبون این فا, فا میخواد ربط بده باز قسمت بعدی رو به قبلی و زنن با اون ازای ظرفیه مشخص کنه وقتی در یک ظرف زمانی چون این سؤالی از تو مطرح شد تو باید این برخورد کنی در واقع مستطره اینجوری بهشون بگی که چی انی غریبون مرحوم علامه تبا طبع رحمت الله علیه در علمیزان جلد دوم صفحه 29 که این آیه رو شروع میکنم به تفسیر عربیش رو کنم. میکنم الا فارسیش علال قاعده باید جلد چارون بشه ایشون در این جا اینکه فرمان این که فرمود سعنی غریبون ولم یقل فقل انهو غریبون این جوری هم میشد بگه این دقت مرموم علامه تبا طبع رحمت الله علیه رو دقت بفرمایید. این که فرمود سعنی غریبون ولم یقل فقل انهو غریبون ثممت تکید به نه ثممل اتان به سفت او الف در همین یک عبارت سه چهار نکته ظریب نکته اول فرمود عنی غریبون میشد به فرماز فقول نهو غریب چون قبلش راجبه پروردگار داره اضاس عل عبادی اننی خب ف نهو این فع نه زمیر تا بره مرجع زمیر برسه و بحث رو به مرجع زمیر رفت بده یک نوع واسطه میخوره تا مستقیم خود فرد مثلا یه وقت از شما میگید که تشبیرید من این کتاب رو به شما بدم یه زمان میفرمایید که کتاب پیش آغاز تشبیه از آقا بگیرید کتابی که شما میخواید به فرد بدید یک زمان مستقیمت از دست خود شما میخواد بگیره یک زمان مراجعه کنه به کس دیگری او از شما بگیره با او بده یک کمی فاصله و واسطه رو مطرح میکنه اگر میفرمود فعنه و غریبون که غریب هست غریب با قافیانی یعنی نزدیک اما در این حال یک حریمی یک واسطه ای هم در این قسمت مورد نظر بود حتی با این نه این نه ای نی ای نی, ای نی یا یعنی من اینم تحکیب سرش در میاره غریبون سفت گفته شده به صورت فل نیومده اینها با همدیگه اوج این بیان مرحومه علامه تبا در اینجا میگن فصمال اتیان به سفت دون الفعل اد على القرب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 ماه رمضان به شما نزدیک وقت دیگه نه تو سهرای عرفات و منا به شما نزدیکه وقت دیگه نه با این عبارت میخواد بگه همیشه به شما نزدیکه حالا پس شبای قدر و شب جمعه و ما اون چیه انشالله از خواهم کرد با این بیان اینهو غریبون با اینه و حورا آ... ببخشید اینی غریبون با اینه و یای نسبت خونه آوردن به عنوان زمیر که به یای قبلی برگرده و قریب صفت میخواد بگه به شما قطعاً حتماً معکدن نزدیک هست پروردگار این نزدیکیشم هم همیشه خدا به شما نزدیکه گاهی وقتا دیدید آدم توی مشکلاتی قرار میگیره ناخداغا به زبانش میاد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 گاهی ما خودمون از خدا دور میکنیم ما ما از او دور میشین گفت پیغمبر اسلام موعظه می فرمودن. فرمودن هر کسی یک لا الاخ الا الله بگه خدا یک درخت در بهشت براش سبز میکنه یکی پامنبر خوشحال شد گفت من جنگل دارم بهشت کاری نده من مرتب دارم میگم لا الاخ الا الله پیغمبر شنیدن فرمودن ادامه شم بشنوی اینو مخصوصاً برای دوستانی که تو احادیث کار میکنن تقاضا دارم تو احادیث یه تیکه رو نگیرید گاهی یه حدیث تنها رو نگیرید اینا رو با جمع ببندید پیغمبر پر میدن بقیهش هم بشنو هر کسی که یک دروغ بگوید آتشی میشود که همه ی اون درختها رو میسوزاند این دوتار کناره هم بگذارید بله لذا خدا غریبه ولی خدا نزدیک، خدا خیلی نهنا اقرب علیکم من حبل الورید یا الیه من حبل الورید او از رگ گردنم به ما نزدیک‌تره ما گاهی دور میشیم ما گاهی خودمون رو در حجاب قرار میدیم او که در حجاب نیست حالا عنایت بفرمایید ان انی من نزدیکم من کنارتونم من باش من لغت ندارم میگم کنارا بلکه بهتر بگم عین ما ببخشید هو معکم اینما کنتم خوبم معكم معیت رو در اینجا مطرح میکنید البته چه نوع معیت بحث داره در جای دیگه در ولاتت ام الله الهانا کرد اونم اگه رسیدم عرض خواهم کرد خوبم معكم اینما کنتم هر جا باشید با شماست گفت که امام علیه السلام فرمودند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 فردا قیافه زرد یه حالته مثل که همین فاصله کوتاه چی کنش داده اومد خدمت امام سجاد علیه السلام آقا من هر جا رفتم خدا بود حضرت فرمودن به معنا میگم تو که اینجور خدا را قبول داری تو که میپذیری جایی نیست که خدا نباشه و وقت حیف نیست که میخوای گناه کنیم و دعای حالا من میگم دعای کمیلم که میخونیم شب جمعه ولایم کنل فرار من حکومته. از دایره حکومت خدا کجا می‌خویم فرار کنیم بریم هر جا بری خدا میبینه خدا خیرش بده یکی از اساتید ما رو اکثر ماها دو تا خدا داریم یه خدای قوی نیرومند قهار جبار یه خدای ضعیف بیچاره هیچ کاری ازش نمیاد نگاه چطور میشه؟ گو مثلا این بند خدا الان میخواد گناه کنه. اینجاست خدا نمیترسه، خدا قوی نیست، خدا نمیبینه. انگار خدا رو به حساب نمیاره. میخواد رشوه بگیره، میخواد دروغ بگه، میخواد به زن نامحرم نگاه کنه. یا نه، آقا یه کار خیلی برای این بندهی خدا بیچاره بکن. خدا بزرگه، خدا ان شاءالله خودش ببخشید. اونجا میرسه میگه خدا بزرگه. آقا یه کار خیلی برای این بیچاره شما میتونید خدا بزرگه اونجا خدا قویه اما خودش شب دلش درد گرفته من خوابم نمیبره منو حتما به بیمارستان برسونید خب خدا بزرگه نه خیر آقا خدا اسباب الهی قرار داده اینجا خدا بزرگ نیست ببینید اینا ما شما قریبا میخوام بگم به همین معنی اونجایی که گرفتاری دارم خدایا مثل که دور یا مثل صدای من نمیشنوی یا این همه ناله میزنم هم اجابت نمیکنی یا اینجا خدا دوره اونجایی که میخوام گناه کنم نمیگم بابا خدا نزدیک میبینه پس از این طرف جدا میشم میخواد یک این درس رو بیاموزه اذا سأل کرد عبادی فعنی غریبون با این بیان فعنی غریبون که تاکید میکنم فرمایش مرموم علامه است نه یا غریب صفات هداوم قرب الهی رو میخواد به ما نشون بده و اوج قرب الهی که انسان همیشه خدا به شما نزدیکه اون لحظه ای که قرآن به سرت گرفتی نگی بکه یا الله خدا به شما نزدیکه اون لحظه ای هم که نعوذ به الله داری امزای ناحق میکنی یه بیچاری رو بیچاره کنی خدا نزدیکه اونجا خدا نزدیکه اون لحظه ای که چشما تو تیز کردی به یه نامحرم تا سو استفاده نگاهی بکنی یا خدایی نکرده رفتی تو محیط گناه خدا تو محیای برای خود گناه بکنی خدا غریبه اونجا خدا هست یوسف پیغمبر رو علیه و علا نبینا و آلهی علیهم مسلام زلیخا زلیخا توی اتاق خلوت قرار دا بوتش پارچه آوردن داخل رو بوتش حضرت یوسف علیه السلام نوجوانی در اوج رجاحت و زیبایی و اقتضای سن نوجوانی هم معلوم اما برادر خدا خدا قرب خدا یاد خدا نگاه به خدا توجه به خدا چه هر یوسف را برنا ببینید شما رو به خدا یه لحظه من خودم هم درس بگیرم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 بعضی شاگرد هام تو رده های خیلی بالا بودن شاید ش سال فوت کرده این مرحوم یکی از استادای ما شاگرد این مرحوم بود خیلی در سطح بالا اون مرحوم حالا اسم میبرم. استاد ما میفرمون یادم میاد قوم زمان مرحوم شااد کردیم و هاائری کردی ما پای درس این مرد خدا نشسته بودیم اخلاق میگفت اخلاقش هم به گونه ای بود که متصل اش از چشم خیلی یا میومد.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 بعد از حضرت یوسف در آلی ترین و کامل ترین کتابش که قرآن است یوسف رو مدرح کرده به چه صورت مدرح کرده قیامت هم به رخ میکشه در احادیث داریم فردای قیامت خدا حضرت یوسف رو میاره به عنوان سمبول زیبایی که در مقابل شهباتش ایستاد به رخ همه میکشه اما زلیخا ظاهرا سیز دلیخا بشر ز زن عزیز مصر بود همه امکانات در اختیارش بود پول و ثروت و قدرت و چی و چی و برو و بیا و امر و نه اما مالک شهوت خودش نبود چقدر ذلیل شد تو همین دنیا اگر یوسف بهش عنایت نمیکرد اگر به ناله هاش توجه نمیکرد.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 و هر کس در این عالم و هر اندازه ای که توانست جلو این تمایلاتو بگیره اوج گرفت و هر اندازه ای که جواب داد بیچاره شد لذا میگه وقتی پردر و انداخ روی بوت جناب یوسف سوال کرد چه میکنی؟ گفت خدای من میبینه خجالت میکشم یوسف آهی از نهادش برامد گفت خدای تو با یه پرده ای که روش بکشی دیگه نمیبینه ولی خدای من همیشه به همه جا میبینه اینی غریب همیشه با منه خب هم من وقتی من این عقیده رو داشته باشم همیشه همه جا خدا با من نزدیکه هم در بازداشتن من از در بدیا ها هم در محرک من برای خوبی که حالا انشالله باید بحث کنیم حالای مقداری وقتم میگیره انشالله خب اجیب و دعوت داد مرحوم علامی اینجا ادامه میدن سمت دلاله علا تجدد دل اجابه واستمرارها حيث اتى بالفعل المضارع ادال عليه ما دقت رو ببینید چقدر زیبات میگه اونجا غریب رو صفت آورد چون با بحث انی تداوب رو برسونه اجیبو رو فعل آورد فعل مضارع آورد فعل مزاره استمرار و دوام رو میرسونه چون اجابت فعلیت خدا رو میخواد میخواد بگه من غریبم به شما نزدیکم عجیب و دعوت دعا دعوت دا را پیلا در این حد بگم تا توضیح بدم دعوت دعا خوندن دعا کسی که دعا کننده است میخاند را عجیب و اجابت میکنم جوابش میدم. بی جواب نمیذارم هم... چون ببینید میخواد دو سه نمیتر رفت کنید من جواب میده میگه عجیب و با فعل مزارم آورده این حالت استمرار و تداومش رو هم برسود دو با این آیا اگر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 تو مطلب در درونتو نمیشفته میگه خاسته شما درست تو دل شماست حتی راجب به نیت امام صادق علیه السلام دارن ان نیتو من القلب نیت از دل برمیخیزه نیت یعنی انگیزه عمل انگیزه عمل مال قلبه و تختلف و حسب اختلاف المعرفه به اختلاف معرفتی که دارید نیت هم در مختلف میشه یه و بین المرعه و قلبه یعنی همون قلب شما که حقیقت وجود شما خواسته شما بر مبنای قلبتونه اون قدر خدا به شما نزدیکه که حتی از انتخاب شما و قلب شما نزدیکتر بین قلب و خودتون خداست من گاهی ما این دور میکنیم ما دور میکنیم خودت نمیخوای گرد گدا کاهل بابد تقصیر صاحب خانه چیز فعیمی غریبون عجیب و دعوت ازا دعا نه اجیب و اجابت میکنم من بر بینا بگو بشارت بده دلشون رو شاد کن من اجابت میکنم چی اجابت میکنم دعوت حد دعه دعوت دعای که حالا رو دعا باید بحث کنیم دعوت دعای دعوت کننده را اضا دعانه وقتی که نون نونه بقایه است یا یه نسبت در اینجا که اضا دعا نی بوده در اضافه یا حذف شده از باب تخصیف لذا نونه بقایاش میمونه که اون معنا رو برسونه اضا دعانه دعانی وقتی که میخوان مرا اینجا اشاره کنم تا حالا باید بحث کنیم از میکنم بعضی وقتا میگیم دعا اجابت نمیشود دعا هست یعنی خوندن است ولی خوندن خدا نیست چون دعا در لغت یعنی خوندن یعنی طلب کردن یعنی درخواست نمودن بنده اگه الان افتادن توی جدولی شما از کنار خیابون جدول داری رد میشی بگم آقا محبت کنی دست من بگیرید این دعاست از نظر لغت یعنی چی یعنی از شما درخواست میکنه از شما طلب میکنه اون گدایی که کنار خیابون تو پیاده رو نشسته شما دارید تو خیابون رد میشید میگه آقا تو رو خدا یه چیزی به من کمک کن این دعاست در لغت اگر اینجا فرموده اوجی و دعوتت دعه ازاد دعانه خواسته این قید و مشخص کنه یک دعا در فرهنگ اسلامی و قرآنی و روایات یعنی چی؟ یعنی خدا را خوندن خدا را خوندن این استلاحه در لغت این نیست در لغت این خوندن هرکی رو خوندید میشه دعای او من شما رو میخونم دعا نسبت به شماست آقا رو میخونم دعای نسبت یعنی از شما درخواست کردم میخواد این قید رو بیاره که اگه ما میگیم دعا یعنی ازا دعا نه وقتی که منو میخونم و همین دلیل اومد خدمت امام علیه السلام آقا دعا میکنیم به اجابت نمیرسه. هر داره ولی این جمع جم کردم یا داشت کردم یه جلسه نمیشه حالا ببینیم چقدر طول میکشه ارز میکنم چندین شرط داره تا دعا مستجاب بشه حالا اسم برم تا برس کنم یک فقط خدا را بخواند وقتی که دعا میکنه ته دل به غیر خدا تکیه نکن بنده الان یه مشکلی دارم میگم خدا اما وقتی به ته دلم مراجعه میکنید امید به ایکس د امیده به زید و بکر و امر دارم این خدا رو من نمی خونم من در کنار خواسته خدا یه امیدهای های دیگه ای مطرحه یا خدا دوست هم داره یا کاری کردم که دوست هم نداره اگر دوست هم نداشته باشه که یا راهان می کنه یا میده حاجت رو حاجت هم می اینا این همه تو روایات عرض می کنم حالا باید برس بشه اما یه وقت دوست داره می خواهد کلاس گذشته تربیت هم نمیده. تا بعد بفهمونه تو منو خوندی؟ و همون ایکس و اگرگ و زید و بکری که دلخوش کردی برو سراغش ببین با کجا میرسه به اونجا برس که از اعماق وجود توحید افعالی به معنی واقعی غزیه رو دریابی که بگی ایاکه نعبدو و ایاکه نستعین نستعینتون ایاکه لازم داره واحی اینجوریه حالا این بحث ها داره انشالله شاء میکنم گاهی نخیر فقط خدا رو میخونه تسلیم خدا هست خدا میگه منو میخونی تو عبد منی عبادی ازاد دعانه تو عباد منی و منو داری میخونی من خیر تو در اینی که میخای نمیبینم رضا نمیدمت میخوام تا خودت متوجه بشی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 تحلیل عقلی هم میکنی میدیم چقدر زیبا در میاد گاهی میاد میگه نه خیر خیر در این هست ولی الان در سطحی نیستی بدم اون حال دعا تو باز داشته باشی. یک کمی طول میدم تا حال دعا در تو ملکه بشه بعد که بهت دادم همون جوری که نداده بودم ناله میزدی بازم همون جوری ناله بزنی اون بودیم یه سالی من هیچ وقت ساکنه قوم نبودم و مسافر بودیم زیارت رفته بودیم این مال چند سال قبله دارم عرض میکنم یکی از دوستانی که ارادت بود دارم و خیلی قویه یه بنده خدایی رو با هم مشارف... مهمونیشون بودم با هم مشرفت شدیم حرم یه بنده خدایی رو دارم گوشه زری عشقی میری حال خوشی داشت من قبطه خوردم به حالش یه خندید گفتم چرا میخندید گفت برو باش.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 حرامه نه عیبی داره نه روایت براتون میخونم خدا و عزت فرمود نمک آشتم از من بخوا بله بیایید بخوای چرا اون آقا خندید اون میخواست اینو به من یاد بده همون طوری که به ما یاد دادن تو دعا اگر خدا غریبه یعنی نزدیک به شماست همه کارا دست اوست الان یه مشکلی پیدا کردی خب طلب داری از بنده خدا طلبم در رفته توام که دسترسی نداری ازش بگیری مشکل داری اومدی اونجا یک مثلا حضرت معصومه سلام الله علیه ها رو واسطه کنی بیش خدا خدایا کمکم خدای رو بگیر حالا اینا را بحث میکنه غریبه پس واسطه چیه این قحوا بات بحث بشه فعلا داریم کلی تو آیه میایم جلو تا این کاری ها رو تاهر کنیم ان خب این خوبه نداره ولی خنده اون آقا میخواد چی بگه شده اگه دیدی حسودیت میشه بیای کنار زری اینجوری گریه کنی اون کمتر از اونه چرا اونجا گریه نمیکنی؟ کنی اون اینو بخنده شده اگر دیدی منیت تو جوری تر تو گل کرده حاضری چارت دیگر رو بکوبی خودت جلوه کنی خلوت کن با خودت اونجا برو عشق بریز خدا منه بدبخت ببین چی گرفتاری چرا اونو گریه نمیکنی؟ یعنی اگر ما انی غریب رو فهمیدیم اجیب و دعوت حد ازا ازاد دعانه رو فهمیدیم همون جوری که در مشکلات مادی محسوس دست دعا برمیداریم حالا الحمدلله جدا میگم خدا روشک من از این نظر خوشحالم بالاخره کم و بیشی تو مجامه تو معافل میبینیم خیلی وقت آدم دعاهایی که میکنه آمینی که از ته دل. جمعیت میگه صداش آدم میشنبه حالش رو میبینه 10 تا دعا میکنه توی یه دعا میبینه یه جوری جمعیت یه دفعه امین گفت این حالت روحی جمعیت رو میرسونه از نظر شناسی، اما یه وقتا یه جایی آدم میبینه دهتا تا دعا میکنه خدای فرج مام رو برسون خدای ما رو هدایت کن ده... آمین ها خدای مشکلات اقتصادی ما رو حل کن چنان امین میگن از ته دل که این حسینیه و ساختمون داره میلرزه خب این نشون میده که عاوی که در رابطه با مسائل اقتصادی نهیکی دل سوزی بیشتری رو داره. ایجاد میکنه دل سوخته در این وادی زیاده مثلا ولی نه الحمدلله جدا ار میکنم. من حتی تو این ریزه کاری ها توجه دارم. گاهی نوارهای های شبای احیا رو بعد خودم گوش میدم. میبینم کجاها آمین یه سوز بیشتری داره. کجاها سوز و گداز جمعیت که کر... وقت اینم باز میگم باز در شرایط دوعاینه گفته سعی کنید با جمع دعا کنید. چون خدا لطف داره اگر دعای یکی رو مستجاب کنه دور از کرمشی که دعای بقیه رو به اجابت نرسونه که خب همین همینجا اجازه بدید اشاره کنم بعد برگردم به بحثم خدایا اگه من بیچار روسیا هم گناهکارم، هم مستحق قهر و عذاب تو هم تو جمع ما هستن کسانی که پاکن دل سوختن خدایا به خاطر اون دل سوخت ها تو جمع ما هستن نابالغ هایی که گناه نکردن پاکن صفای باطن دارن خدایا به خاطر اون بچه ها و خردساله هایی که تو جمع و پاکن خدایا تو ما هستن پیرمردها و پیر که یه عمر عشق ریختند یه عمر ناله زدن حالا در دوران کهولت به جهت که سن یه حساب خاصی با تو پیدا کردن خدایا خاطر اونها حوائج شریعی ما را روا بفرما. پس یکی از مس... گاهی نخیر اصلا کلاس تربیت خدا بنده را میخواد تربیت کنه اجابت رو عقب میندازه. حدیث قدسی است خداوند بعضی بنده ها رو که دوست داره اجابت دعاشون رو تاخیر میندازه. این بحث امشب که از این آیه شروع کردیم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 و بر چه احساسه که از لا بلای اینها چی در میاد شخصی اومد خدمت امام صادق علیه صلات و سلام هفته امام صادق هم هست دوشنبه شهادت امام صادق علیه صلات و سلام اومد خدمت امام صادق آقا مشکل مالی دارم حضرت فرمود بشین آلا. نشست در این به این کسی از راه رسید به اندازه اون صحابی از زفرم پیش حضرت ارزش نداشت معمولی بود رسید آقا مشکلی دارم حضرتی فری صدا زد چی امکانات داریم یه مقدار بیا بهشون داد رب سوم آقا مشکل مالی دارم حضرت فرمود چقدر مونده امکاناتمون آقا اینقدر مونده فرمود بدی داد رفت این آقا دیگه تحمل نکرد علی فدی ابن رسول الله من از یاران شما من از اصحاب شما من ارادته به شما دارم گرفتارم شما اون دوتار جواب مثبت دادید منو ردید منو ساک یعنی جواب منو از فرمودن دوست داشتی به بدیم پوری بری ما میخواستیم پیش خودمون باشی با این ندادن میمونی آن البته قید گذشته گذاشته اعضا درانه منو بخانم خب حالا وقتی که همچی کاری میکنم سل یستجیبولی پس باید که اجابت کنن منو گوش کنن برفم بیان ببینم من چی دارم میگم ولی یعمن و بی پس باید ایمان بیارن به من این معنی آم کرده ما معنی خواستم کردن عرض میکنم اجابت آمه پس باید منو بپذیران اجابت آم کنن ولی یعمن و بی و باید به من ایمان بیارن اینم به صورت آمه لعلهم یرشدون باشد که رشد کنند میخوان روشت کنند میخوان کنن. تا عالی بیابند میخوان به درجات بالا برسان پس منو اجابت کنند و همچنین به من ایمان بیارند برخی فرمودن اینجوری ترجمه نکنید اگر ترجمه کردید این قید خاص رو بگید شاید این حرفم درست باشه حالا از کدم اینا رو باید بحث کنید گفتن اینجا تلی استجیبولی ولی یمنو بی در رابطه با و اجابت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 در رابطه با غریب و دعا که بسیار زیباست اگر آمم باشه باز حالا هم دوتا رو میکنیم این فشرده آیه بود حالا جدا جدا اولین مصدره که در این آیه امشب دیگه وقت ما نمیده اشاره کنم بحث رو بگذارم بیاری خدا برای هفته بعد دعا دعا اشاره میکنم یک دعا تحول و توسل با صاد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 انقطاع الیک تا اونجا که حتی تشلت تا اینکه متصل بشه ارواح ما به عز قدس تو و معلق به اون مرحله بشه در قالب دعا این اتصال رو مطرح میکنه کالا انشاءالله باید بحث کنیم پس یک دعاست که روح ما را به عالم بالا متصل میکند دعاست که روح را متحول میکند حالا فقط فعلا در این حد بگم تحول رو تا بعد اینا یه مقداری بحثایه این تحبیرم به کار میبرم کارشناسی هم میخواد کارشناسانم میخواد که معنی تحول روحی چی؟ حالا اجمالش اینه روح ما میتونه در یک حالتی باشه که این حالت خیلی خمود و بینشات و همین که میگیم خستگی روحی دارم که سلم انظر روحی حال دعا ندارم حال مثلا نماز و عبادت ندارم همینجور دیگه نمازه رو زحمتی میخونه و بعدش هم یکی هم میبینید چه حالی در نماز و داره خودش توفیق هم خودش بحثیه خود دعا از عواملیست که این تحول باعث میشه که باید انشاءالا بحث کنیم دو اتصال به قدرت برتر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 دیگه فکر میکردم بعضی روایات و صحیفم آورده بودم یه تکای صحیفه سجادیه بخونم که اینا میمونه حالا الله عمری باشه هفته بعد به این بحث خواهیم پرداخت الله. خب هفته ایش که دوشنبه این هفته بیست پنجمه شبوال شهادت امام صادق علیه السلام. همه امامان ما به گردن ما حق دارن جانشون مالشون و آبروشون رو فدا کردند برای اینکه ما حق شناس بشیم و در مسیر حق عمل کنیم منتها شرایط زمانی هر امامی یه اقتضای خاصی داشته شرایط زمانی امام حسین میکنه آشورا درست بشه شرایط زمانی امیرالمومنین اقتضا میکنه 25 سالی اونگونه خونه دل بخوره 5 سالی هم اونگونه رنج ببره و هرگز امام صادق علیه السلام از اون بزرگواران اولا بهشون میگن شیخ الا چون عمر امام صادق علیه السلام از همه امامان طولانی تر بود ولی در عین حال امام صادق علیه السلام چه رنجی در این دوران تحمل کردن به خاطر شناسندن حقیقت تشیع و علتی هم که یه مقداری عمرشون طولانی شد نه اینکه دشمن در کمینش نبود درگیری بین بن و بنیومیه یه فرصتی به حضرت داد فعلا دو تا ظالم به جانه هم افتادن حضرت کمی فراغت پیدا کرد به یه کار عظیم زیربنائی که تعقل تفکر، تعلیم، تعلوم آگاهی نسبت به دین و دینشناسی رو به مردم بده حضرت بپردازه. لذا چی شایردهای خوبی هم گرفتن اینجا تو پرانتز بگم آقایون از این مهمتر میخوایی معلم امام صادقه کلاف درس امام صادقه توش جناب مؤمن و درمیاد. در میاد هشام ابن حکم در زراره و محمد ابن مسلم درمیاد. میاد عبا هم توش در میاد.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 ابو هنیفه اونا رو یاد نگرفته بود تو کلاس امام صادق شاید منصور دوانقی نمیخریدش خریدش چرا منصور ابو هنیفه رو خرید بلد بود آخه یه چیزای بلد بود گفت میتونی با این اطلاعاتی که کسب کردی در مقابل امام صادق یه دکان واکنی من یه ادر رو جلب کنم بیارم اینجا بکوبم امام صادق رو گو باش این اطلاعاتش باز شدی نکنه چهار کلاس درس خوند نکنه چهارتا آیه و حدیث یاد گرفتی دور برداریا سریع میگم و خودم میگم نکنه جشت من فلان کتاب خوندم فلان استادی دیدم فلانی چقدر این استاد دیدن این کلاس رفتن این معلم دیدم تو آدم ساخت و متدین شدی اگه نشدی همش حجاب است در رفع حجب کش نه در جمع کتب خیلی ها بلد بودن شما خیال میکنید اگوانی بلد نبود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 استعدادش چه بوده مولا صدرا همه اونهایی که یه مقدار آشنا بودن معترفم که این مرد ثروت پدریشم پدرش خیلی متمول بود در شیراز با پول پدر خودشم درس خونده یک قرونم از سهم امام استفاده نکرده با پول پدر خودشم به دیگرانم داده در شیراز به بالاترین درجه ممکن رسید شد اومد توی اسبهان حوزه رایج اون زمان شیخ حوزه عالم حوزه مرجع وقت جناب شیخ بهاییست رجلی شیخ بهایی ما میشنویم یه چیزی چهل سال حوزه های علمیه رائج رو دیده بعد از این چهل سال میاد میگه علم نسبت که علم ما مابقی تلویس ابلیس شقی بعد از اون همه خوندن کندنها کار کردنها زانو زدنها استاد دیدنها حالا اومده یک پارچه معنویت مشغول تعلیم و تعلم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 حالا میره داماد یه جوانیست تقریبا در حوزه اسلام گمنام این جوان که دوستانی که اهل مطالعه هم کتاب فواعد و رزویه از مرهوم شیخ عباس قومی رحمت الله علیه رو بخونم اسم کتاب چرا فواعد و رزویه است؟ مروم هاشیخ در مقدمش میدیسه میگه مدتی خراسان برای زیارت مشرف بودم دیدم من ساعاته که برای زیارت میرم بینش رو عمرم و هدر ندم تو کتاب خونه آستان و قدس رزوی میشینم شراحال علماء رو از این کتابا میکشم یک کتاب میندیسم می یک کتاب به این قدس شده فواعد و رزویه او بازار رفت خرید کرد خرید خوبی هم کرد. این کتاب رو نوشت از بازار و کتاب امام رزا به دست آورد گیرش اومد در حالات میره داماد که میرسه، ایشون اینو نقل میکنه میگه در حوضه علمیه کرکی. با اون مقام اونم در ردیفه مثل شیخ بهایی از فوقه ها کتاب فباید و رو بخونید میگه محقق شوی خواب دید. امیر علیه السلام رو مولا فرمود محقق یک جوان سید است. توی طلبه های قوم فقیره طلبه های اسفحان فقیره ولی این طلبه رو ما دوست داریم دخترت رو بده به این جوان از او پسری خدا خواهد داد او عالم مکتب ما میشه خدمتگذار ماست محقق از خواب بیدارش. مرجع وقت رئیس و حوزه سرستاد این جوون رو پیدا کرد پدر میره داماد اینو پیدا کرد آقا جون میخوام داماد خودم بشه یک طلبه سقیر گمنام مرجع تقلید وقت میگه بیا میخوام داماد من بشی دخترشو داد بشه بعد از چندی دختر بچه دار نشده از دنیا رفت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 و این یک همچه عالم موشکاف دقیقی که باز اوز میخوام داره وقت گرفته میشه سریع بگم اینا هر دو محاصر شعباس صببی شعباس میخوست مقام این دوتا رو بسنجه میره دامات جوونه رسید به جایی که میخوست برسه مورد تعیید بود شیخ باهایی پیر در اون سن رسیده به جایی که میخوست برسه شاه یه روزی دستور داد یه قاطر پیر مردنی دادن به شیخ بهائی، یه اصل چابک تیزرو دادن به میر داماد. خودشان سوار بر یه مرکب روز جمعه امروز میخوایم بریم از شهر بیرون توی باقی من سوالاتی از شما دو تا عالم دارم. شاه ابوس هم زیرک بوده. یه مقداری که از شهر خارج شدن شیخ بهایی پیر مرد بود، قاطر مردنی، همین عقب می‌افتاد، شیخ میر داماد جوون، اصلم چابک، ناخداگای کمی تو این مسیر اصل صدقت میگیره. شاه عباس خودشو به شیخ باهایی چسبون، شیخ میره داماد رو ببینید، جوون آخا تعجب میکنه، ملاحظه ریش شما رو نمیکنه، مراعات نمیکنه، هی صدقت میگیره. میخواست شیخ، گفت ساکت باش. راجو میره داماد حرف نزن. اون معنویات و تقوایی که او داره، میخواد معراج بر این اصل نمیذاره. دید نه. در این هیچ حسادت نیست و مقام میره داماد رو چگونه میستایه؟ کمی فاصله انداخ سبقت گرفت اومد چسبید به ش... میره داماد گفت شیخ باهائی پیرمرد ما مار خسته کرده ملاحظه جمع نمیکنه یه کمی قاتل تو نهیب بزن بیا دیگه اینجوری رو خسته میکنی دستت باش راجب شیخ حرف نزن اون معنویت و تقوایی که شیخ داره ده قطار شطور نمیتونه بکشه این قاطر داره میمیره نمیتونه شیخ تحمل کنه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 چنان منو گرفت اصلا نیست که ما تو شدم به حدی ماه که این شخصیت شدم شان که منو نگاه میکرد من حتی یادم رفت سلام کنم اون صدقت سلام گرفت جوان تو رو ندیدم مثلین که تازه واردی گفتم من شاگرد شخ بااییم از شیراز اومدم شیخ فرموده بیام سراغ شما بایه لبخندی زد بهقول امروزی های گذنهشی صورت داد. یه نکتش که مورد نظر بحث من اینه گفت جوان قبولت میکنم میتونی. ولی به شرط این که همراه این درسایی که من میدم عبادت تو بیشتر کنی قرآن خوندن تو بیشتر کنی سوز و گداز و راز و نیاز رو بیشتر کنی دور بر نداری کلمه اسپلاحات یاد گرفتی ها. ما در وادی علم که یکی از ارزش خاص اومدی تو کلاس امام صادق علیه السلام علیه امام صادق عامل منصور دوانقی میشه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 حقیقتی که آجون نمیشه مخصی کرد حالا آخری گفتن کلاس امام صادق تحتید کلاس امام هم تحتید کرد حضرت هم تو خونه محاصره بود در خونش هم بستن طرف یه سوال داره میاد مدینه میگن در خونه امام صادق اجازه نداری وارد بشی به چه مکافاتی قضای های خیار پروش اینایی که میدونی خب چرا چرا امام اینجا من دو نکته رو سریع یک چرا چون ظالم و باطل نمیخواد حق به مردم برسه مردم حقا را بفهمن ظالم را نمیفذیرن لذا میخوان جلوه اشعای حق را بگیرن این یک دو این نکتر هم دقت بکنید ما اینجا باید توجه داشته باشیم اگر مردم آمادگی استفاده ای از حق داشتن ظالم انقدر میدون براشوانه میشد که کلاس امام صادق را اونجور تحتیل کنه آب از آب نخوره این بی بخاری مردم رو می رسونه ولی به هر حال تعطیل کردن اما یه اده شایردان خاص. من اینجا تصور میکنم تو ذهنم دیگه به اندازه فهم خودم به امام صادق چه رنجیش برای اون شایردان خاص چه رنجیه برای امام صادق یه عمر زحمت کشیده محمد ابن مسلم تربیت کرده بهلول تربیت کرده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 جابر جوفی میشنوید من حقیقتا میخوام بگم جابر مثل سلمان بدنم به لرزه در میاد این جابر همونه که امام صادق صداشت داد و باباش امام باغر علیه السلام دو اردوتاست امام باغر بهش فرمود این چیزایی که بهت میگم تو سینت نگه دار به احدی نگو خیلی دل سنگینی کرد گودالی بکن سر بکن تو گودال خالی کن خالی بشی کمی تو گودال بازگو کن ولی هرپا حرفا... اون ظرفیت نداره مگه هرپا رو میتونن بشنون حالا امام مگه نمیخواست بقیه جابر بشن ولی مگه میذارن اخریام تحمل نمیکنن زهر به امام علی السلام میخورانند امام رو مسموم میکنن در تاریخ داره که تشییع جنازه مفصلی از امام صادق به عمل آمد شاگردا بودن علما بودن مردم بودن حالا درسته امام رو شهید کردن امام رو مسموم کردن ولی ظواهر تشییع جنازه مفصلی کردند. آقا امام کاظم اومدن قبرستان بقی بر بدن پدر نماز خوندن بدن پدر تو قبرستان بقی با احترام دفن کردند. جمعیت به امام کاظم علیه السلام سر دادن اما خود امام صادق علیه السلام فرمودند لا یوم کیاوم کیا ابا عبدالله. این بیان خود امام صادق مخصوصا امام باقر امام صادق افساسیتی به آشورا و کربلا و ازاداری و گریه داشتن چون معلم بودن مخواستن یاد بدن حالا که میخوان یاد بدن میخوانین توجه هم بدن شاگردای دای ما چهار کلاس درس خوندید نکنه گریه و روزه یادتون بره. نکنیم لذا امام باغر چه کار کرد دقیق کنید وقت نیست من نگرانم ازیتون کنم سریع امام باقر وقتی امام صادق مخواستن به دنیا بیان کسی رو فرستادن از تربت قبر امام حسین بیارید با آب فرات میخوام قاطی کنم اول چیزی که به کام بچم میرزنم این باشه امام باغر خودش امام زنده است امام صادق هم امام بعدشه تربت خاک کربلا با آب فرات میخوام یعنی فکر نکنید من امام نسبت به حریم ائمه میخوام بگم من که اینقدر بلدم. من دارم تو کام امامم سروت میزدم. روشم فکم آبی پیدا نکنیا. با چارچوب کلاس درس خوندن. یک دو امام باقر وسیعت کردن. امام باقری که باقرالعلوم. کلاس امام صادق رو امام باقر فراهم کرده. حالا امام باقر داره ادامه میده. امام صادق ادامه میده. امام باقر وسیعت کردن. از فل سروت من. کسانی رو اجیر کنی تا ده سال بیان تو منا در ایام حج خب ایام حج که محرم نیست ماه زلجه است میخواد تأثیر تبلیغی بگذاره تو ایام حج بیان تو منا بشینم برای امام حسین گریه کنم پول بدید بشون قدری یه مجالس رو بدونید قدر روزه ها رو بدونید جوان تنها شدید دلت گرفت تو خونه نوار روزه بذار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 رجا و سلاح و هلو ارحم خدا یا رحم کن من کسی را که رأس مال یعنی همه سرمایش همه سرمایش رجاست امیده به تو داره و صلاح و هلو بکا هم گریه است یه عجیب کار میکنه دلا بسوز که سوز تو کارها بکند